کسی که عجب داره در روایت شریف داره که پردی که عجب داره و خودش رو برتر می‌بینه خود بزرگ بینیداره در واقع خودش رو نابود کرده این خودش رو نابود کرده کدوم خوده که نابود میشه این که هست جسمش بدنش و در میان مردم ظاهر و باطنش به ظاهر مثلا بارزه و میشرخه تو مردمه این که میگه خودش رو نابود میکنه با عجبهش یعنی نفسش رو با بین میبره ما یه بدن داریم یه خیشتن خیش داریم یه خود داریم خود ما همون روح ماست گاهی میگن روح گاهی میگن نفس گاهی میگن قلب اعمال ظاهری بیرون افعالی که انسان بیرون انجام میده وقتی در درونش و در روحش این اثر سو رو داشته باشه که تو پس آدم خیلی خوبی هستی این در واقع روحش رو داره جرهدار میکنه و این حالت هرچه پا بگیره سبز بشه روح از بین میره روح پج مرده میشه و یه گوشهی میخزه فرمانده بدن میشه احساسات میشه امیال میشه همون نفس امماره پس یکی از دشمنان بزرگ روح انسان عجبه عجب به ظاهر آدم ضربه نمیزنه چهره زیبایی داره چهره شادا داره به ظاهر اما در درون مجروحه روح منکوب شده ضعیف شده در مجموعه آیات و روایات وقتی شما توجه میکنین می‌بینی فرمانده بدن روحه حالا اگر این روح ضعیف بشه این روح اون قدرت فرماندهیش رو از دست بده کی فرمانده میشه؟ میل و دل آدم دیدی بهش میگه آخه چرا این کاری کردی؟ تو که میدونستی میگه میدونست دل دیگه یه لحظه اون کاری که نباید بشه شد توجه نداریم که این فرمانده وجودش که روحش هست ضعیفه. اون توان رو نداره که هیجانات و اون احساسات درونیش رو کنترل کنه نگه داره. احساس به قول خودمون دل خیلی سیزار میخواد. اون چیزی که میتونه تونه کنه متعادلش کنه به محض اینکه هیجان به سرش زد عمل نکنه اون روح انسان. ما باید روحمون رو هرچه بیشتر تقویت کنیم از جمله صفاتی که روح رو ضعیف میکنه عجبه این که ما یک کاری انجام بدیم یک کار خوبی انجام بدیم و در ازاش احساس کنیم کسی شدیم چه آدم خوبی هستیم مثلا چه ارجوه رو بیداریم پیش خدا مثلا حالا اگر بنده های خدا نمیدونم بالایی خودش میدونه اونایی که باید از باطن خبر داشته باشن خبر دارن